شو باشد جهان جوی با فر و خوش نباید که دارد به بدگوی گوش زه دستور بد رو گفت بد تباهی بدهیم شاهی رسد داوند جان و خرد چنین برتر اندیشه بر نگذرند سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ به ویژه برنامه پنجره‌های رو به مهتاب درود می‌فرستم بر شما استاد فریدون جنیدی مثل هر یک شب شب در خدمت هستیم و برای ما از داستان‌های شاهنامه می‌گویید استاد سلام شب شما بخیر درود با شما روزگار شما خوش استاد یی خودی من نمی‌دونم چرا <تصفيق> میشه یه بشر مثل امواج دریاز گاهی بالا که پایین اره مهم؟, مهم انواج نیستن مهم جان دریاست چی تو چون این موجی که میره بالا فکر می‌کنه زنده است و شاد مونه میره پایین گمان بریم اون داره که مرده یا قمگینه مهم یک موج نیست مهم جان موج نیست مهم جان دریاست که همه انواج رو در خود داره مون زنده ی جا بدانه. ما باید به زندهی بیاندیشیم و بپیوندیم همواره زنده خواهیم بود خواهی نخواهی، اندکی گرفتاری یا اندکی ناخوشی بر انسان پیش میاد امیدوارم که برنامه با خوشی به پایان برسه با اون میده خدا نیاکان ما خیلی به طبیعت نگاه میکردن به ماه، به خوشی، به دریا، به زمین، به گیاهان ببیره تلوسیه بزار ما تونه چون تو جا میبینیم با جان جهان زیستن مفهوم داشتن جانه و تنها فرهنگی در جهان این اصطلاح رو داره که جان جهان این در فرهنگ های دیگه دیده نمیشه و اجزا و زرات این جان جهان در همه جا در در وجود دارند و در همه جا پراکندند و آسیب رسندند و رنج رسندند حتی به یک ذره کوچک از جان جهان آسیب رسندند به خود جان جهان تلقی میشه این است که نیاکان ما در نظر داشند که آسیبی از اونها به جان جهان نرسه با مهر و پیوند و نگرش بزیند نسبت به هم خود نسبت به جانوران نسبت به گیاهان حتی توهین به زمین رو سپندارمز زمین رو جایز نمیدونستن بلکه سپندآرمز زمین نامش اصولا سپنت آرمیتی بوده یعنی زمین گستراننده مقدس فروتن در حقیقت عآشق این زمین گستراننده مقدس فروتن آشق عاشق همه جاندارانه همه جانداران جانشون از زمین دارن ولی همه این جانداران پاشون بر سر و چشم همین مادره و او همه رو دوست داره به همین دلیلی که مادر رو به سپندارمان زمین همانند کردند و روز دارمزگان رو که جشن میگیریم هم روز بزرگداشت زمین زمینه هم روز بزرگداشت مادر و زنه بنابراین وقتی که جهان و جهان اینطور مهر میوزه به همه باشندگان جهان خب ما باید سرمش بگیریم که مهر بوزهیم به همه چیزو همه کس حقیح. یک خواهر که تو بیابان رویده اون از جان جهان جان گرفته و رویده اگر نگاه کنیم میبینیم که زندگی که خداوند برای ما در حقیقت برای جهان در نظر گرفته لبری و و زیبایی و مهره این ما هستیم که با قهر و غذب و کسالت خود دی، خودمون رو در حقیقت با اندوه و قم همراه میکنیم و بعد سمره این است که به دیگران هم و رنج برسونیم حالا <تصفيق> این در... خیلی دونست و دقیقه یعنی برای من موبایی که یاد چرا من که ممکنه پیانه یه موقع حالشون خوب نباشه کسیل باشن نمیدونم ب... افسرده باشن داره دل زمین به ما میگه میگه فروتن باش عاشق باش مهر ببرز اون معایت حالامون خوب میشه پس شما نمرتون خوب این روز اینا رو پیاد باید رو پیادی رو رو برای شما عرض میکنم ما ادامه داستان اردشی رو در برنامه امشب داریم شاهنامهاتون رو باز کنید و آماده باشید با ما تماس بگیرید با تلفون های 220-485 220-485 فکر نمره خوب شتاب من رو بیشتر کرد 220-588-20-220 5 نج دو صفر و شماره پیامک سی ه پنجصد پنجاه و پایگاه اطلاانی ما آدرس اینترنتی ما که شما میتونید برنامه های پنجره رو از اردیبهشت سال گذشته تا حال ببینید این هست www.radiofarhang.ir عزیزانی که اقوام دوستانش رو از کشور هستن و دوست دارن مایل هستن برنامه‌های رادیو فرداوین بپیجه برنامه پنجره پنجره‌های رو به رو بشنونن چون من خیلی هم شنیدم از دوستانی که به معروف در اون طرف آب هستند در کشورهای فارسی زبان هستند، اونها برنامه ما رو میشنوند از طریق محواره هاتپرس یا نیلصد اون بخشی که رادیو هست رادیو نام رادیو فرهنگ رو پیدا بفرمایید و برنامه‌های رادیو فرداوین بپیجه برنامه ما رو بشنوید والشکر و زوق و شاد از اینکه همه ما به امید خدا نمره 20 بگیریم من که خیلی خوشحالم برنامه امشب رو میشنم مت اول در مورد شعر میخواستم صحبت بفرمیشم شهری که امشب خوندید رو اگر به بفرمی... این از گفتارهای بزرگمرد هست که اگر پادشاهان بخانند که کشورشون به خوبی داره بشه نباید بدگویان رو به در خودشون راه بدن تا دستور یعنی وزیر یا کار کارگزار بد نباید داشته باشن چون اونها با گفتار بد خود تباهی می مشابهان پادشاه مشابران پادشاه خیلی هم مهمه خیلی, و مهمه. خیلی هم مهمه اینا با گفتار خودشون تباهی میرسونن به در حقیقت شیوه کشور و در پایان به پادشاهان و که نصیب کشور میشه هر درد و رنجی بشه این پادشاهان ها میرن دکستور از به میرن اونتا از کارهای خوب اگر داشته باشند آسایش و آبودانی به کشور میرسه و اگر نداشته باشند درد و تیمارشون تا قرنها و قرنها برای ملت باقی میمونه از یزدان اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته وقتی که اردشیر بر بنیاد گفتارهای کانم اردشیر بابا کان شاپور رو میشناسه اون رو میسفره به دست فرهنگیان تا اینکه بیاموزد دانه شد. سخنان رو تکرار میکنم بیاورد فرهنگیان راز شهر کسی کوز فرزانگی داشت بر نوشتن بیاموختش پهلوی نشست سرفرازی و خسروی همون جنگ را گرد کرده ز بالا یعنی از عصف به دشمن نمودن سنان زمه خوردن و بخشش و کار بزم سپه جستن و کوشش و کار رزم من این رو با برقیقت شیبه آموزش تهمتن جوان فهلاوان در باره سیا بخش مقایسه میکنم تا شنوندگانی گرامی خود ببینن که چقدر ما کارمون از دیدگاه تربیت فرزند با پادشاهان و در حقیقت فرهنگ و پژوهش پستی گرفته در زمان سوسانی این پیرامون 4700 سال پیشه که داستان سیاوخش آغاز میشه من بارها عرض کردم که این رویدادهای شاهنامه رو با در حقیقت رویداد زمین و زمان همراه کردیم و این تاریخ ها از های از شاهنامه به دست اومده که در کتاب داستان ایران اینا رو همه رو خواهیدید که من چطور میگم مثلا پیرامون 4800 سال پیش این رویداد ها هنگامی که رستم میپذیره که سیاه رو بپروراند اون گفتار شاهنامه اینه تهمتن ببردش به زابورتتان نشستنگه هشتاخت در گرچتان سواری و تیر و کمان و کمند انان و رکیب و چه و چون و چند خب سواری و تیر کمان کمان رکیب معلومه که جنگ آوریه کارهایی معلوم جنگه اما چه و چون و چند چیه بعد چه،, چه یعنی چیستی جهان چون یعنی چه بونه چیستی جهان اون چیزی که روشنی در اندیشه نیاکان ما بوده و بعداً یونانیان گفتن سلسفه چون چگونگیه یعنی فیزیک یا فیزیک و شیمی مثلا با هم چند یعنی ریاضی هیچ کس به حال به این موضوعات فکر نکرد چه؟ چه چیستی جهان چون چگونگی یعنی دانش مثلا فیزیک و شیمی جلد. چند یعنی ریاضی چه؟ چون چند بعد از این بعد روشان، بعد روشان نشستنگه میدوز و میگوسور مدلس چون که این در آین ایران که روان بوده و بعدم که پادشاه در مجلس با چطور بنشینه که شکوه بادشاهی و بزرگی خودشو نشکنه همون باز و شاهین و یوز شکار این یک بخش دیگه از زندگی پادشاهان هم که شکار بوده در اینجا اومده مهم اینه زداد و زبیداد تخت و کله سخون گفتن رزم و راندن سپاه این خیلی مهمه که کسانی که سردار و پادشاه بودن چگونه سخون بگن با سپاهیان تا بتونن به اونا نیرو و جان ببخشن و اونها رو در در راندن سپاه نیرو کنن شما میدونید که یکی از کسانی که در همین روزگار اخیر بود که خیلی خیلی شگفت سخن می‌گفت این هیتلر بود و در آغاز او عضو اون سازمان سیاسی آلمان نبوده کسانی که سازمان سیاسی تازه آلمان رو پیریزی میکردن یک شب در یه رستوران میبینند که یک افسر جوانی هست با دوستانش داره صحبت میکنه. اونها تشخیص میدن که این, این چنین سخن گفتن و این شیوه گفتار به درد تحریک و تهیج سپاهیان و مردم و کشور میخوره اون رو کشیدن و بعد کم کم به قدره رسیدن شد هیتلر. یعنی شیوه گفتار و انگیزشی که از گفتار بسیار برانگیزاننده پیش میاد برای پادشاهان ها خیلی خیلی مهمتر بوده از بقیه شیوه ها این میبینی در اینجا یاد میشه ازش سخن گفتن رزم و راندن سپا سخنبری سخن سخنبری چطور مردم رو حرکت بده این کشور رو حرکت بده اون کسی که بهتر میتونه کشور رو حرکت بده اون میتونه مثلا پادشاه ها خوب باشه خوب هنرها بیان مختصر به سر بسی رنج برداشت که ببر میبینید که در زمان ساسانیان از این سخنان چیزی نیست یعنی از داد و بیداد تخت و کلا و از چه و چون و چند یعنی دانش دانش برای پادشاهان در آموزش پادشاهان و یا شاهزادگان خبر نیست این پستی گرفتن فرهنگ مملکت داریه از چارزار هشتر سال پیش تا مثلا هزار هشتر سال پیش پستی گرفته نمیخوند نمی که غیر جنگ و هیاهو اینها کار پادشا باشه آدم بزرگ ندارن آدم های بالا به دشمن نمودن سنا اینا رو من گفتم تا ببینیم تا جوانان خردمند ایران بسنجند که چطور هیر نشیب و نزول پیمودیم پیمودیم پیمودیم تا اونجا که شکست خوردیم شیوه مملکاتوری به دانش ارج نهادن خب خب اینجوری واسه دوستان هست که یه شخصی به نام کید کیت هندی م... همطور که در بیشتر داستان هست که دوتا کبوتر و همساکنه که خواهر این چه اون چه اینا میخوان در حقیقت به داستان جنبه یه چیز معنوی بدن که از طرف خداست یا از طرف نیروهای جهانیه یا نمیدونم یه ناشناس اومد چی گفت یا صدا چنین پیچید حالا در اینجا کید هندیه کید هندی که از اون میخوان یاری بگیرن که باید چک کنیم من پرد وقتی شاه روزیز جنگ پشادی نبودیش جای درنگ ببینید این بیت درستترین بیت داستان توثیقه اردشیر ارذشیر رو بکن.*}{} ورنه مخالفت می‌کردن. ایرانیان مرتباً جنبش می‌کردن، مخالف بودن با این پادشاهی اردشیر و این که او شاهنشاه ایران رو کشت و مرتباً جنگ میکردن خیلی خوب اینجا آمده حتی در خود تو قانون ارذشیر رو بکنم متن پهلوی شمیناست. چون تا یک جور رو راست می‌کویم، جای که خیزش میکردند چه جایی ز دشمن به پرداختی دیگر بد کنش سربرف همی گفت که از کردگار جهان بخواهم همی آشکار و نهان که بی دشمن آرم جهان را به نباشم مگر شاد و یزدان پرست به دو گفت فرخنده دستور اوی که ای شاه روشندل راهجوی سوی کید هندی فرستیم کس که دانش پژوه است و فریاد است. بدان از چمار سپهر بلند در پادشاهی و راه گزند یعنی از چه راه گزند وارد میشه به در حقیقت حکومت اگر هفت کشور ترابی همال بخواهد بودن باز یابد به فال یعنی که دی او در خواهد یافت یکا یک بگوید ندارد برنج نخواهد بدین پاسخ از شاه گنج چوبش نید بگذید چهردشیر جوانی گران مایه و تیزویر به دو گفت رو پیش دانا بگوی که ای مرد نیک اختر رو راه جوی به اختر نگه کن که تا من ز جنگ کی آسایم و کشور آرم به چنگ اگر بود خواهد مرا دستگاه به تدویر آن زود به مای راه اگر نیست این تا نباشم برنج بر نپرا کنم میز گنج بیامد فرستاده شهر یار برای با حدیه و بانسار بگفتن که با او شهنشاه گفت همه رازها برگشاد از نهفت بپرسید سو کید و دمخاره شد زفرسش سوی دامنش و چاره شد نگه کرد بر چا... کار چرخ بلند ز آسانی و سود و بیم و گزند فرستاده را گفت کردم شمار از ایران و از اختر شهریار گر از گوهر مهرک نوشزاد برا میزدین تخمه با آن نجاد نشینت به آرام بر تخت شاه نباید فرستاد هرسو سپاه میبینید که در شب گذشته به اینجا رسیدیم که شاپور رو در داستان این چنین جلوه دادن که پنجاد درصد از اردوان یعنی پنجاد درصدش اشکنیه. با این تمهید خواستن که دل ملت ایران رو به دست بیرن که به دست نمیمد که دیدیم خودش اینجا نشته که مرتبا جنگ داشتن. بعد تمهید دوم اینه که بیاری کاری بکنیم که فرزند شاپور پن... یعنی در حقیقت بازم از اشکونیان بوده باشه تا 75 درصد نجاد فرزند شاپور اشکونی باشه که ملت ایران تابعیت اونو بپذیرن این میگه که حالا از مهرک بیا میزد با این نشاد مفروع اینه فرستاده آمد بله شهریار بگفتان چه بشنید جان نامدار چو بشنید گفتار او اردشید دلش گشت پر درد و رخ چون زریر فرستاده را گفت هرگز مباد که من بینم از تو مهرک نژات به خانه درون دشمن آرم بکوی شود بابر و بوم من کینهجوی ز مهرک یکی دختری ماند و بست که او را به جهرم ندید است کس بر آتش همش بریان کنم بر او خاک را زار و گریان کنم به جهرم فرستاد چندی سوار یکی مرد جوینده و کینه دار چه آگاه شد دخت مهرک بجست سوی خان مهتب به است نشست چو از آن دخت مهرک بده مرو را گرامی همی داشت مه به بالید بر سر به صحیح و بازیبو و بافرحی ما میدونیم که در داستان پیشین وقتی که مهرک رو خاندان مهرک رو به باد داد یکی از مهرک باقی نموند ولی اون داستان داستان ساخته میشه که یه دختر دختر خردشور بوده و ریخ و بالاخره زنده بود خب پیامک های شما اومده و پرک زیادی هم از تلفن های شما همشته دوستان دارن آماده می‌کنن شما می تو با شما تلفن های دو و ۲ست چهارصد پنج دوست و, بیست و, پنج و, بیست و, پنج و بیست هشت دو, هشت دو, و بیست هشت دو, هشت دو با ما تماس بگیرید. ام از پیامک هم میتونید با 30558 تماس بگیرید و پیامک خودتون سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید 30558 بسیاری از شما از ما خواستن که آ یه سوال کردن تلفظ اجازه الجزوری تلفظ مانده نباشید سوالم از استاد تلفظ صحی نیشابور و معنای آن است این شهر در آغاز بوده رعی یعنی دارنده جلال و شکو و فروق رعی اصولاً یعنی فروغ این نام در شاهنامه به صورت ریونیز دارماده و بعد کم کم رعی به صورت ریوندم دارماد که الان بخشی از غرب نشابور رو بر داره در یکی از جنگ ها یا زمین لرزه ها وقتی که نیشابور ویران شد به هنگام شاپور دوباره اون رو ساختند و نام گذاشتن نو شاپور یعنی شاپور پهلوان ولی البته نیشابوریان که خراسانی و پارتی بودن به هیچ روی حاضر نبودن که نام شاپور ساسانی بر روی شهرشون باشه بنابراین تمهیدی اندیشیدند و اون که بگن اینجا اپرشتر اپرشتر این شهر برین شهر بالا به زبان پهلوی خب این همواره من در نویشتهای پهلوی که موجود هست و اونجا که من خوندم غیر از یک بار که نام نیشابور مده هیچ دیگه از این نام استفاده نشده همه جا گفتن اپرشتر هم شادما شدن از اینکه نامی که به نام شاپور هست به نام اپر و افرشتر خونده بشه این یعنی شهر برین شهر بالایی و تا پایان ساسانیان به همین ترتیب بود نبشابور نگفتن کم کم نام نبشابور تبدیل شد به نیشابور و, و بعد از اسلامان که دیگه اون تأثیبات پارتی ها با ساسانی از بین رفت هم به صورت شهر نامیده شد هم به صورت نیشابور و دیگه کم کم باز عبرشهرم فراموش شد نشابور, نشابور با نشابور در اصل بوده نیو شاپور نشابور پهلوان که هیچگاه به اون صورت از توی نشابوریان پذرفته نشد خواستن نظر شما رو بدونند درباره اینکه این که اگر آریایی ها مهاجر بودند به این فلات ایران اومدن و دیوان رو بیرون کردند آیا نظر درست هستش به ها فرار کردند این آریایان هیچگاه مهاجرت مکردم به ایران ایران از آغاز از آنماست اونتا تا ها که خواستند که در کار ایران سفلته بکنند این دروغ رو گفتند ما میدونیم که اگر یک کسانی مهاجرت بکنند هم زادگاه اصلیشون پیداست و هم به جایی که مهاجرت کردم مثلا وقتی که اسکندر مقدونی گوجستک که ایران حمله کرد ما میدونیم که او از مقدونیه اومد و اینجا رو ویران کرد برگشت. وقتی که مثلا چنگیز اومد، ما جایگاه چنگیز رو و مغولار رو می دونیم. موقعی که قوزان اومدن، ما هر کسی که حمله کرد اومد، ما جایگوشون رو می دونیم. عرب وقتی اومدن، جایگاهشون معلوم بود. این چطور میشه که به گفته ی ایران ایرانشناسان غربی، آریویان معلوم نبود که جایشون کجا بوده؟ ده. خب این همچی چیزی ممکن نیست بلاخره جاشون باید من یکی میگه هواشی رو دانوب بوده یکی ولگا بوده یکی سیبیری بوده و بلاخره هم روشن نکردن این معاجرت یعنی این گفتار نادرست رو خودشون پ... گفتن و پرورش دادن و اکترونم میبینیم که یک ایرانی هم حتی داره اینی میگه هیچ که ایرانیان از جای دیگه مهاجرت نکردند و این سرزمین گرامی همواره متعلق به نیاکان ما بوده من اینا رو در کتاب زندگی و مهاجرت آریایان 32 سال پیش نوشتم تقاضا دارم که اون شنونده گرامی این کتاب رو بخونه ببینی که این سرزمین از ماست. ما چطور میتوانیم شاهنامه ویلایش استاد تایدون جنیدی و تعلیفات دیگه ایشون رو به دست بیاریم شماره تلفن یا آدرس رو به ما بفرمایید. آدرس بنیاد نیشابور رو به ما بفرمایید. من بخش اولش رو عرض می‌کنم. شما میتونید تلفن بزنید، اینجوری راحت‌ترید. تلفن بزنید یا دورنگاه یا همون فکس بفرستید و تقاضا کنید و می‌تونید هم وارد سایت بشید، سایتی بنیاد نیشابور بشید. عرض می‌کنم تلفن یا همون دورواژ بنیاد نیشابور هست 88 بیست و هفت هشتاد و چهار پس یه با دیگه از میکنم هشتاد و هشت و شش بیست و هفت هشتاد چهار این تلفون بنیاد نشابون هست دونگار یا فکسشون این هست هشتاد و هشت نوید و شش بیست دو چهل و هشتاد هشت ۶ش ۲ و دو آدرس اینترنتی پایگاه اطلاعرسانیشون هستش بنیاد خط تیره نشور dot آ میکنه بنیاد خط تیره dot آ آ میتونید تماس و درست دیر از این طریق میتونن خیلی راحت تر با تلفن تلفون بگن با میفرستن براشون و فیک میتونم بفرستن براشون به نام یزدان بزایید تدار تماش دیشتر برانم بذار خیلی سخت و عرض میکنم خدمشم و سوالاتش لما خیلی پر میکردن دست و من بارها حالا گفتم از استاد تشکر کردم اینجا باست هم تشکر میکنم این ماشاءالله قدرت ذهنشون هست و دانششون هست که اینقدر پراکندهگی سواله رو شما راحت جواب می حالا این ح قبل مثلا گفته شده من در همین آن تون عرض میکن همون موقعی که ش باشه مه ازان دهشی از گرامی میدارن به نام اززان پاک با درود استاد درباره ایلامیان کنونی و نژادشان توضیح بفرمایند ایرانیان و کنونی مثل شاخهای یک درخت بزرگ هستن که به تنه اون درخت و واسطه اون تنه به ریشه اون درخت پیوست هستن اینکه که کرد و لور و لک و آزربایجانی و گیلانی و تبرستانی خراسانی خوراستانی تقریبا چلپنج طایفه بزرگ رو میتونیم بشمریم. مثل مثلا فتخونی پشتون و بعد تاجیکا و بعد بدخشانی ها و بعد در حقیقت احلی فرغانه و سمرغند و بخارا و چاچ و قفقاز و تاتا و تالشا شاید پنجاه گروه رو بدونیم بشمریم که همه اینا داره یک فرهنگند و شاخه های گونه گونه یک درخت هستند به همین دلیلی که همسانی و هماهنگی بین این شاخه ها ما میبیدیم. اما اندکی اگر زبانشون با هم دیگه فرق داره خاصیت زندگیه یعنی اینکه در یک درخت فرض گردوی تناوره چند هزار ساله هیچ کدوم از دو ها کاملا مثل هم نیستن و اندکی که با هم فرق دارن این فرق در گویش ها و در برخیشیبه های زندگی بین تواف مختلف ایرانی دیده میشه روی هم رفته فرهنگ فرهنگ ایرانی نیاکان و ما هم همون بزرگواران بودند پوسیدن معنی... شهرناز چیست آیا همون شهرناز است؟ شهرناز داریم ما شهرنواز شهر البته بلد. داریم ولی شهرناز است که یعنی ناز نازلین شاه یه داره بعد دوستیم سلام از بیمهری ایام اگر یادت نکردیم همیشه در قلب ما, ما هستید فراموشتان نکردیم استادگرام احترام به زمین همین نیست که تمام اجداد و نیاکان ما در دل همین زمین مقدس آرمیدن از مشهد شهر توس تیمورتاش هستند. شاد باشید هر دو دوتاست مادر زمینه بعد زمینم هم همه رو میپذیره دوباره به خود میپذیره و این زمین مادر گستراننده عشق ورز فروتن مقدس ده. با سلام آیا اردشی ربابکان از امپراتوری، امپراتوران رومی تمام امپراتوران رومی تمامی مناطق دوره هخامنشی درخواست کرد خود را وارث آنها دانسته به زا از ملایر با تشکر شاد باشید خب میدونید که اشکان عردشیر باباکان 480 سال بعد سلوکیا اونجا هم 80 سال هم اونا بودن یعنی 500 و تقریبا 60 سال بعد از هخامانشان اومده پس نمیتونه این خبر درست بوده باشد با. درود بر استاد جنردی عزیز تفاوت نام های ناهید و آناهیتا چیست؟ با سپاس بابک از بندرگز آناهیتا درود و بندرگز و با اون کوستان و بلندش و مردم سمیمیش آناهیتا نادرسته آناهیتا باشه. من چند بار باز بازم میگم هیته یعنی بسته آهیته اه اه آ پیش بند تاکید میشه بسته بعد آهیته اه اه نفیش میکنه میشه نابسته یعنی روان یه میانبند میگیره که بهتر تلفظ بشه میشه اناهیته اناهیته یعنی روان یعنی رود روان یعنی آبهای روان جهان آبهای روان پاک جهان اناهیته باید خوب کم کم ساده میشه میشه ناهید دیگه میتونه که نام ها کم کم ساده بشه مثلا فرض کن که نام رستم در عصب رعود ستحمه رعوده یعنی پیکر روینده و بالنده ستحمه یعنی سمگی رعوده ستحمه در پهلا بشود رستم در فارسی شد رستم ساده میشه ناهیدم همونه و یه پیام که دیگه هم هستش که خیلی خوبه من برای همسر من برای روز پدر و روز مادر برای من شاهنامه سردوسی آخری خواستم از این طریق از برنامه‌تون از این پیراستق برنامه‌تون از خانومم تشکر کنم نشدم باز شاد اون همسر به شاد هر دو همسر که با همدیگه موافق هستن و دوست دار هم هستن و پیوندشون رو با شاهنمه بیشتر استواری میبخشند شاپور با دختر مهرک نشناد چلختی برای اومد بر این روزگار فروزنده شد دولت شهریار به نخشیر شد شاه روزی پگاه خیب شاپور با او براه به هر سو سواران همی تاختند سه نخچیر دشتی بپرداختند یعنی یک دشت شکار رو گرفتند این آین پادشاهان ما بوده که این دشت های پر از نخچیر رو خالی کردند یعنی جرگه که میبستند اطراف یه جلگر رو از کوه ها شروع میکردن به کوبیدن کوس و بعد و شروع داره شروع داره و رو وسط. وسط در شکارگاه خود پبریز که در بیستون هم جانوره و این پادشاه به هر سو ممنوع فقط گفتن که برای موبدانی که پول ندارن یا کسانی که بیکار هستن میتونن شکار بکنن اینقدر اینا رو کشتن آخرین شیر ایران رو پسر این ناصر دین قاجار کشت که آخر عمرش هم دیوونه شده آخرین شیر ایران به دست این کشی شد متاسفم که اینا رهاوردشان از شکار این بوده اصلا دریغ نداشتن این همه جانوبر خون بریدن رو زمین کردن دیگه نه. زنخچیر دشتی بپرداختن یعنی یک دشت همارش کشتند پدید آمد از دور دشتی فراغ پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ همی ران شاپور تا پیش ده فرود آمد از راه در خانه مه یعنی در خانه کتخوربان یکی باغ بود کش شو سرای جوان اندر آمد بدان سرز جای یکی دختر دید برسان ماه فرو از چرخ دلوی به چاه یعنی دلوی یعنی تلفظ فارسی تول و یعنی سطل چون در زمان با, با سطل آب می‌کشیدن دیگه بای. چون مروخ روی شاپور دید بیامد بر او آفرین گسترید که شادان بوی شاه و خندان بوی همه ساله از بیگزندان بوی هم رو توجه کنید همه از بی گردانان یعنی درد و مرض و ناخوشی به طرفت پیوت به تو درون آب سرد و خشک بفرمای تا من بغم آبکش یعنی اجازه بده تا من بر شما آب بکشم فرستنده ای را بفرمود شاه که تش داور و آب بکشه شو که در به گران پر آب گشت پرستنده را روی پرتاب گشت یعنی اون مردی که رفت که آب بکشه نمیتونه بکشه خیلی گران شده صد پر آب شده پرستنده را گفت که نیم زن نزن داشت این دلو و چرخ و رسن همین برکشید آب خندانز چا تو گشتی پر از رنج و فریاد خواه خوا یعنی یاری خوا. همانگه رسند بستد از فیشکار شدن کار دشخار بر شاه خار. کنیزک چه او دل را برکشید بیامد به مهر آفرین گسترید کنوشخ بوی تا بود روزگار همیشه خرد باد از خار به نیروی شاپور شاهرد شیر شود بیگمان آب در برچا شیر. نشوندی دیگه من شناختم که تو شاپور هستی جوان گفت با دختر چربگوی چه دانی که شاپورم ای روی؟ چون این داد پاسخ که این داستان شنیدن بسی از لب راستان که شاپور گردیست با زور پیل به بخشندگی همچون دریای نیل بدو گفت شاپور که ماه روی سخون هرچه تو را راست گوی پدیدار کن تا نژاد تو چیست که بر چهره تو نشان کهیست بدو گفت من دختر مهترم، از را چون این خوب و گندابرم. چون این داد پاسخ که هرگز دروغ برای شهریاران نگیرد فروغ که شاور را دختر ماه روی نباشد بدین روی و این رنگ و بوی البته این میدونیم که نادرسته برای که زیباترین دختران ایران هم توی روستها هستند و دیده میشند و اینها گله گل دشت های ایران هستند و آرایش دشت ها کشتار های ایران چنینیست دختران ایران کشابرزان ایران همه زیبا چهره هستند و هر ست حالا در داستان اینطور آوردند یعنی در اصل داستان اردشیر بابخان همینطور اومده کنیزک او گفت که شهریار هرانگه که یابم به جان زینهار بگویم همه پیچ تو از نژاد چو یابم خشم جهاندار داد ب گفت شاپور که از بوستان نرست از چمن کینهی دوستان